سلام من محمد جواد مویبی هستم و با قسمت اول از یک سفر نسبتا طولانی مدت در خدمت شما هستم که در انتهای اون امیدوارم من و شما در یک قطاری سوار شده باشیم که مطمئن و با دوام به سمت استقلال مالی در حرکت باشه. اما قبل از اینکه من در ادامه مسیر در مسیری که در پیش خواهیم داشت و من در کنار شما هستم راجع به تمام مسائل مرتبط با آزادی مالی از بدهی، پسنداز درآمد، مباحث مختلفی که با پول داریم، مباحث مختلفی که می‌تونه مرتبط با پول چه به طور مستقیم یا به طور مستقیم راجع به همه اونها صحبت خواهم کرد. اما نظر خودم اینه که در دو هفته اول برای اینکه سطح انگیزه و انرژی شما بالا بره که بتونین این سفر نسبتان طولانی و هم سفر هم باشیم روی این موضوعات کار میکنم که چطور چرایی واقعی خودمون رو پیدا کنیم و این چرایی و این دلیل واقعی انگیزه راه ما برای رسیدن به اونجا باشه و هر که فکر میکنم بزرگترین مبحثی که راجع به این موضوع هست بحث جاه طلبیه. چرا بحث جاه چون یه چیزی بود که من خودم همیشه اون رو عنوان که ارزش منفی میشناختم یعنی جاه رو با حریص بودن اشتباه میگرفتم اینگار که اگر کسی جاه باشه نمیتونه به رضایت در زندگیش برسه زندگی ما زندگی عادی ما زندگی عادی افراد مختلفی که میشناسیم و از زندگیشون رضایت ندارن و مثل اون شیری هستن که در کنج قفص داره غرغر میکنه با اساس دو موضوع مهمه یکی متوسط بودن یکی تصادفی بودن یعنی اینکه به زندگی متوسط بودن رضایت دادیم و می‌ترسیم یک سری مرزها رو رد کنیم می‌ترسیم از منطقه راحتی خودمون خارج بشیم و من این بحث جاهطلبی رو به این خاطر مطرح کردم که شما برای خودتون رو باید تعریف کنید اگر تمرینی گفته میشه شما یک مقدار از اون چیزی که واقعا در توانای خودتون فکر میکنید هست اونو فراتر ببرین و دومان تصادفی بودنه یعنی اینکه زندگیمونو ریزی کنیم بله دنیا متغیرهای زیادی داره و طبق نظر ما پیش نخواهد رفت و خیلی از برنامه‌ها تغییر خواهد کرد ولی فرق یک کسی که قرار به سوار قطار آزادی مالی برسه در انتها به نظر من با افراد دیگری که در انتهای ما با الانشون هیچ فرقی نخواهد کرد و شاید بدترم خواهد شد در اینه که اونها زندگی کاملا تصادفی دارن صبح میان کار ببینن چی میشه ولی ما قرار برنامه ریزی کنیم برنامه رزی برنامه میکنه اشکالی نداره خودمون تنظیم میکنیم. برای منظور من اولین چیزی که از شما میخوام اینه که یک دفتر دویستبرگ فنری تهیه کنید حتما همین امروز یک دفتر دویستبرگ فنری تهیه کنید چون در تمام کارهایی که باید انجام بدیم تمام نکتههایی که احتمالا از حرفهای من میگیرین تمام منابعی و آموزش هایی که معرفی میشه و مهمترین مسئله پیشرفت خودتون رو در این دفتر اندازه میگیریم و اگر به های بزرگی در انتهای این سال برسیم با این دفتر رو مطالعه کنیم شایق خواهیم بود. پس اولین چیزی که از شما میخوایم یکی که این دفتر دویست برگ آماده کنیم چون قرار در 10 تا روز آینده یعنی تا آخر اردیبهشت دلیل واقعی رو یک دلیلی رو برای خودمون کشف کنیم که چرا میخوایم به اونجا برسیم. اونجا کجاست؟ راجع به اونجا هم صحبت می‌کنیم. شما یک داستان شخصی از خودم بگم که خیلی وقتا میگفتم که مثلا من خودرو برای خودم مهم نیست واقعا هم خیلی مهم نیست میگفتم که خودرو یه ماشینی که شما از نقطه آب به نقطه ب میبره ولی وقتی که دیدم که این فکر فکر متوسط بودن در منو تقویت میکنه تصمیم گرفتم که در این زمینه جاه طلب باشم یعنی چی یعنی اینکه یک چیز بزرگتر از اون موردی که الان فکرشو میکنم برای خودم در نظر بگیرم و حالا برنامزی کنم که ببینم چطور به اون میرسم اگه قرار با هم به سمت آزادی مالی گام برداریم باید مثل یک انسان آزاد رفتار کنیم اولین گام خریدن این دفتر برگه در روزهای آینده راجب این موضوع صحبت خواهم کرد شاد و من باشید